سلام علیکم و رحمت الله علیکم الله رحمت با توجه به اهمیتی که حضرت علی به مقوله علم و دانش میدهید و با توجه به پتانسیل بالای که از دانشگاه های بزرگ کشور نیست اگر سیاست‌گذاری جزی دارند، بلکه کبود بود جه کار چندانی ازش یعنی اونی دانشجو بوده دانشون بغض نمیشه که بنده خودم از دانشویان و دانشگاه اون کردستان هستم امید داشته متأسفانه در من خلاصه میکنم کارهای تجزیه کی انجام دادم در حدود 15 سال بر روی حسگرهای زیستی کار کردم و با سبت اخترارات داخلی و خارجی به غل و خوبه اعلامی محبت ندن جوان مظهر و امید بابر به خود امید با آینده اینو بویسی در جوان تزریق کنید جوان یک کشور اگر بخواهد مثل موتور پیش برنده ای او ملت را به پیش ببرد احتیاج دارد به اینکه سرحال با نشاط تندرست قوی و دلبسته به کار و پیشرفت باشد جوان باید در درون خود در دل خود در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده این کشور آینده این ملت آینده این تاریخ یک مسئولیتی دارد مسئولیت فقط مال پیران و میانسالان نیست بلکه می توان با یک نگاهی گفت جوان یک مسئولیت سنگین دارد چرا؟ چون توانایی جوان شکوفایی جوان نیروی جوان بیش از دیگران است جوان ها باید هوشیار باشند دشمن دانسته است که حقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه میخواد این رو تایید کنه این صفای جوانی این نورانیت دل جوان این میل به قرب الهی به توجه و توجه تکلم با خدای متعال در میان جوانان ما یک نعمت بسیار بزرگی است شماها پاکید های جوان شما نورانی است قدر این نورانیت را بدانید قدر استعدادهای ذاتی خودتون را بدانید این استعدادها را بروز بدید پروردگارا این جوان های عزیز رو در سایه لطف و هدایت و حمایت خود ذخیره دنیا و آخرت این کشور قرار بده در همه میدان ها اونها رو پیروز کن پروردگارا التاف معنوی و برکات معنوی خود رو بر این دل های پاک و جوان بباران قلب مقدس ولی عصر را از همه ما راضی و خشنود کن